قصه‌ی هزار و یک شب شب هفتم چون ماهیان آن بیت بخاندند دختر تابه را سرنگون کرده از همان جا که در آمده بود بیرون گشت. وزیر گفت این کاریست شگفت. از ملک نتوان پنهان داشت. در حال برخاسته پیش ملک آمد و ملک را از ماجرا آگاه گردانید. ملک گفت من نیز باید ببینم. پس سیاد را حاضر آورده به برکش روان ساختند. سیاد به سوی برکش تافته در حال چهار ماهی بیاورد و ملک گفت چهارصد دینار زر به سیاد بدادند. پس ملک با وزیر گفت که در همین جا ماهیان بریان کن تا به ایان ببینم. وزیر گفت تابه حاضر کردند و ماهیان به تابه انداختند. هنوز یک روی آنها سرخ نشده بود که دیوار بشکافت. غلامکی بیامد سیاه و چوبی در کف داشت. با زبان فسیح گفت ای ماهی به عهد قدیم و پیمان محکم هستی؟ ماهی سر و گفت آری آری و همان بیت پیشین برخاند. پس از آن غلامک تابه را با همان چوب سرنگون کرد و ماهیان هر چهار بسوختند و غلامک از همان جا که در آمده بود بیرون شد. ملک گفت باید این راز را بدانم. در حال سیاد را بخواست و از مکان ماهیان جویان شد سیاد گفت از برکه است در پشت این کو ملک گفت چند روزه مسافت است سیاد گفت ای ملک نیم ساعت به توان رفت ملک را عجب آمد و همان ساعت سپاهیان و سیاد بیرون رفتند سیاد به افرید لعنت همی کرد و همی گفت زبد اصل چشم بهی داشتن و خاک بردیده انباشتن پس به فراز کوهی بر شدند و در بیابان بیپایان که در میان چهار کوه بود فرود آمدند که ملک و سپاهیان در تمامت عمر آنجا را ندیده بودند پس به کنار برکه رفته چهار رنگ ماهی در آنجا دیدند ملک در ایستاده از سپاهیان پرسید که تا کنون این برکه را دیده بودید یا نه؟ گفتند لا والا ملک گفت دیگر به شهر باز نگردم تا چگونگی این برکه و ماهیان بدانم انگاه سپاهیان را گفت فرود آمدند و وزیر را بخواست وزیر مرد دانشمند حشیار بود پیش ملک آمده زمین ببوسید ملک گفت من همی خواهم که تنها نشسته از چگونگی این برکه و ماهیان آن جویان شوم تو امیران سپاه را به سپار که پیش من نیایند تا کسی به قصد من آگاه نشود وزیر چنان کرد که ملک بفرمود چون شب درآمد ملک پاتيق برکشیده به هر سو میگشت ناگاه از دور یکی سیاهی بدید خرسند گردید نزدیک رفت قصری یافت از رخام و مرمر که دو دره آهنین داشت یکی از آن دو بسته و دیگری گشوده بود خورم و شادان به نزدیک در ایستاده به نرمی در بکوفت آوازی نشنید بار دوم و صیم در بکوفت جوابی نرسید در چهارمین کررت به درشتی در بکوبید آوازی بر نیامد دلیرانه به دهلی زندر شد فریادی برکشید که ای ساکنان قصر مرد رهگذر فقیرم توشه به من بدهید دو بار و سه بار سخن اعاده کرد جوابی نشنید دل قوی داشته به میان قصر در در آنجا نیز کسی نیافت بلکه دید که فرشها به بدآنجا گسترده و در آن میان حوزی است از بلور و به چهار گوشه آن حوض شیرها از زر سرخ است که از دهانشان در و گوهر به جای آب همی ریزد ملک را بسی عجب آمد ولی افسوس می‌خورد که کسی نیافت از برک و ماهیان آن باز پرسد پس در گوشهای نشسته سر به گریبان فکرت برد و انگشت حیرت به دندان گرفت ناگاه آوازی هزین شنید که به این شعر مترنم بود نه بر خلاص حبس ز بختم عنایتی نه در صلاح کار ز چرخم هدایتی از حبس من به هر شهر اکنون مصیبتی و از حال من به هر جای اکنون روایتی تا کی خورم به تلخی تا کی کشم به رنج از دوست تعنی و ز دشمن شکایتی ملک چون این آباز بشنید از جای برخاست و بدان سوی رفت پردهای دید آویخته چون پرده برداشت در پشت پرده پسری دید ماه روی نشسته بر تختی که جدا از زمین بر هوا ایستاده بود و آن پسر در حسن و ملاحت چنان بود که شاعر گفته چو آفتاب و مهستان نگار سیمین بر گرافتاب گل و ماه سمبول آردبر بر نهفته در گل و سمبل شکفته آرز او مه است در زره و آفتاب در چنبر شکوفه را شکن زلف او شده است هجاب ستاره را گره جعد او شده است سپر به زیر هر گره ای تود توده از سمبول زیر هر شکنی حلقه حلقه از انبر ملک را از دیدن آن جوان خرمی و انبساط روی داد و اما جوان ملول و محزون بود ملک سلام کرد او جواب باز گفت و از جای خیشتن برنخواست و از برنخواستن عذر خواست. ملک گفت ای جوان از این برکه و ماهیان رنگین و از این چهار کوه و این قصر و تنهای خیشتن مرا آگاه گردان و بازگو که چرا به دینسان گریانی؟ جوان چون این بشنید گریان شد و دامن خود را به یک سوزد. ملک دید که از ناف تا به پای سنگ و از ناف تا به سر به صورت بشر است پس شبان گفت ماهیان این برکه حکایتی قریب دارند و آن این است که پدرم پادشاه این شهر و نامش محمود صاحب جزایر و سود بود هفتاد سال در ملکداری بزیست پس از آن بمرد و مملکت به من رسید دختر ام خود را به زنی آوردم و او مرا بسی دوست داشتی و بی من صفر نگستردی و خوردنی نخوردی پنج سال بدین منوال گذشت روزی به گرمابه اندر شد و به خانسالار گفتی خوردنی از برای شام آماده کند پس من به فراز تخت بر شده خواستم بخسبم با دو کنیز گفتم که باد به من بزنید یکی به زیر پا و دیگری به بالین من بنشستند و باد به من همی زدند. ولی مرا خواب نمی برد و چشم برنهاده بیدار بودم. پس کنیزی که به بالین من نشسته بود و آن یکی گفت افسوس از جوانی خاجه که به زن بدکردار دچار گشته. با آن دیگری گفت الحق چنین زن نشایسته ی ماست که هر شب به خوابگاه دیگران اندر است. آن یکی گفت، چرا خاجه از او هیچ نمی دیگری گفت، خاجه از کردار او آگهی ندارد که او هر شب پاری بنگ به ساغر شراب اندر کرده خاجه را بیهوش گرداند و خود به جای دیگر روید بامدادان باز آمده خاجه را به هوش آورد چون من سخن کنیزکان بشنیدم، باور نکردم تا دختر امم از گرمامه به در آمد صفر گستردند خوردنی بخوردیم و زمانی به حدیث اندر شدیم پس از آن شراب حاضر آوردند دختر امم قدهی خورده قدهی دیگر به من داد من چنان بنمودم که باده همی خورم اما به پنهانی ساغر بریختم و به شنیدم که می گفت به خسب که بر نخیزی پس برخواسته جامعه حریر و زرین بپوشید و خیشتن بیاراست و در گشوده برفت. من نیز از اثر او روان شدم و همی رفتم تا به دروازه شهر برسیدم. سخنی گفت و فسونی خواند که من ندانستم در حال دروازه شهر گشوده شد و از شهر بدر شدیم و همی رفتیم تا به حساری رسیدیم دختر به خانه گلینی که در میان حسار بود برفت و من به فراز خانه بر شدم و دیده بر روزنه بنهادم دیدم که دخترک به قلام سیاهی سلام کرد و زمین ببوسید بلامک سر برداشته به او تندی کرده گفت تا کنون چرا دیر کردی که زنگیان در اینجا بودند و هر کدام معشوقه در کنار داشتند و باده همی گساردند چون تو در اینجا نبودی من باده ننوشیدم دخترک گفت ای خاج خود میدانی که مرا است؟ او را بسی ناخوش دارم و اگر پاس خاطر تو نبود من این شهر را زیر و زبر میکردم غلامک گفت ای روز بی دروغ میگویی. گویی به جان زنگیان سوگن که دیگر به سوی تو نگاه نکنم و دست بر تند ننهم آمدن تو نزد من از روی میل نیست اگر تو را شهوت نجامد پیش من نخواهی آمد القره از غلامک از این سخنان میگفت و دختر بر پای ایستاده میگریست و میگفت، ای سرور دل و روشنای دیده مرا به تو کسی نیست اگر برانیم از در درایم از در دیگر القصه دختر چندان بگریست که غلامک بر او رحمت آورد و به نشستن جواز داد دختر خرم بنشست و با قلام گفت ای خاجه خوردنی و نوشیدنی هم می‌خواهم غلامک گفت در آن کاسه گلین پاره گوشت موشی هست و در آن کوزه سفالین درد شرابی مانده آنها را بخور دختر برخاسته آنها را پیش نهاده بخورد و بنوشید و جام برکند بر روی بوریا و زیر کپنک در پهلوی غلام بخسبید من از روزنه خانه ایشان را میدیدم و سخن ایشان میشنیدم آنگاه از فراز خانه به زیر آمده تیغ برکشیدم و خواستم هر دو را به یک بار بکشم تیغ به گردن غلامک بیامد من گمان کردم که کشته شد چون قصه بهدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست